سلام به شنونده های کانال هزار افسان داستانی رو بهتون تقدیم می به نام میخ امیدوارم تا آخر این داستان همراه من باشید یکی بود یکی نبود روزی روزگاری در شهری کوچیک مرد پاکتل و زحمت کشی زندگی میکرد کرد که اسمش مراد جان بود مراد جان کارگر یک مغازه آهنگری بود از خروسخون صبح مشغول کار میشد. پتک میزد و میخ میکوبید. غروب وقت اذان با چند قرص نون به خونه برمیگشت. اون سال زمستون سرما بیداد می کرد. همه جا برف بود، بارون بود، باد بود. مراد کنار کوره آهنگری عرق میریخت و زحمت میکشید و دلش به محبت زن و بچه هاش خوش بود. یه روز که دونه‌های برف مثل پنبه‌های نرم تو هوا پخش می‌شدن و شاخه‌های نازک درختا توی باد می‌لرزیدن، شاه داشت همراه وزیر از جلوی مغازه رد می‌شد که گفت: وزیر، نگاه کنین آهنگر با چه شور و شوقی کار می‌کنه. انگار نه انگار برف و سرماست. وزیر گفت: به نظر من اون زن و بچه هاشو خیلی دوست داره. همین دلشو گرم میکنه و به دست و بازوش قوت میده. شاه سرشو تکون داد و اهن و کرد. یعنی من باید از کارش سر در بیارم. بعد جلو رفت و سلام کرد و نگفت من شاهم. فقط گفت مسافرم و خسته راهم. آهنگر کورش رو خاموش کرد و براشون نون و چای آورد. اون وقت چون شب بود از هر دوی اونا خواست که به خونش برن. شاه و وزیر دعوت مراد جان قبول کردن و همراه اون را افتادن. وقتی که به خونه رسیدن همسر مراد جان اومد جلو. سلام کرد و حالا احوال شوهرش را پرسید. کفش و لباسش رو از اون گرفت. شاه گفت آفرین همسر خوب یعنی این بی خود نیست که آهنگرونو دوست داره. زن آهنگر برای شوهرش شربت آورد. برای شستن و دست و پاشم به اون کمک کرد. وقت شام بهترین قسمت غذا رو برای اون گذاشت شاه که از حسودی چشاش چارتا شده بود به وزیر گفت نمیذارم این زن مال آهنگر باشه همین فردا اون رو به قصر خودم میبرم. برم وزیر گفت سلطان بزرگ این شرط مردونگی نیست رسم زندگی نیست آهنگر زحمتکش و بی آذاره. با معرفت و مردم داره خدا رازی نیست آزارش بدی شاه انگار نه انگار چشاش رو روی خوبیای مراد جان بست و از خانه بیرون رفت وزیرم به دنبالش همون روز مامورای شاه به مغازه آهنگر اومدن مامور گفت مراد جان به دستور سلطان تا فردا زُر باید 300 کیلو میخ برای تبیلۀ شاه آماده کنی وگرنه سرتو به باد میدی مراجا جان ناامید و خسته با دل شکسته به خونه رفت. دیگه نه حال خوردن داشت و نه آسله خوابیدن. غمگین گوشه‌ای نشست. زنش پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ مرجان ماجرا رو برای اون تعریف کرد. بعدم بلند شد و با توکل به خدا به مغازه برگشت. تمام روز، تمام شب پتک میکوبید و زحمت میکشید. شب گذشت و صبح شد. اون هنوز مشغول کار بود. زنش غذا رو آماده کرد و گفت: "مراد جان، بیا چیزی بخور، نفس تازه کن. خدا بزرگه، ناامید نباش." مراد جان گفت: "مگه نیمی بینی؟ من فقط سیتا تا میخ آماده کردم. کو تا 300 کیلو میخ آماده بشه؟ اینطوری جون و زندگی ما اداس میره." زن باز اون رو داد. مراد جان با همه خستگی دوباره مشغول کار شد. نزدیک اذان ظهر بود دیگه فرصتی نمونده بود یهو کسی به در کوبید رنگ از صورت مراجان و زنش پرید هر دو ناراحت و دست دستپاچه به هم نگاه کردند مراد گفت به نظرم مامورای شاه اومدن زن گفت وقت ازانه قصه نخور خدا یار بیکساست اون وقت چادرشو به سرش انداخت و رفت پوشیدند مامورای شاه اومده بودند یکی از اونا گفت ای زن به شوهرت بگو سی تا میخ برامون بیاره. سلطان مرده. سی تا میخ برای تابوتش کافیه. همین. زن با خوشحالی برگشت و صدا زد. مراد جان مژده بده که خدای مهربون به داد ما رسید. سلطان مرد و چوب بدذاتی خودشو خورد. مراد جان خدا رو شک کرد و رفت و میخار و آبو.